برلین آلمان 16 مارس 1992 هیلمود پشت میز کارش نشسته بود و پرونده های زیادی که روی میزش قرار داشت بررسی میکرد. از اکتبر گذشته و بعد از اتحاد دوباره آلمان پرونده های جدیدی به دفترش سرازیر شده بود. او موفق شده بود تو خانواده را که در زمان تقسیم شدن آلمان از هم جدا شده بودند دوباره به هم برساند. و بعد از آن بود که مشهور شد و آوازش همه جا را پر کرد. یک روزنامه در مورد نوع کارش و چنین موقعیت با او مصاحبه کرد. بعد از آن مصاحبه صفح افرادی که خواهان چنین خدماتی بودند زیاد شد. پرونده مورد نظرش را از میان پرونده های فشارده بیرون کشید و دوباره از صفحه اول شروع به خواندن کرد. دستیارش، این پرونده را صبح از اداره رسیدگی به جنایات پلیس مخفی آلمان شرقی اشتازی دریافت کرده و برایش آورده بود. بنابرای درخواستی که از طرف موکلش داشت، بیش از دو ماه طول کشید تا درخواستش تعیید شود و موافقت لازم برای به آوردن این پرونده محرمانه را کسب کند. شماره پرونده 11.6548 نام متهم سپ برگن اتهام مخالفت با نظام و پیوستن به سازمان های مخالفین و اپوزیسیون هیلمود برگه ها را زیرو رو کرد و اولین مدرک پرونده را برداشت درخواست تایید دستگیری متهم، خدمت ریاست سازمان ما گزارش های متعددی درباره باره و فعالیت های او دریافت کردیم طبق گزارش های رسیده نامبرده در جلسات مختلفی که با هم فکرانش داشته به انتقاد شدید از حکومت و مکن کردن سیاست های دولت می‌پردازد. با پیگیری‌های انجام شده برای ما مسجل شده که این گزارشات صحت دارد. ضمن اینکه نامبرده در تمسخر و استهزاء اعمال دولت و رهبران حکومت افراد کرده و در موقعیت‌های مختلف مرتکب این عمل شده است. چون این رفتارهایی تأثیر منفی بر صلح جامعه میگذارد که برای دولت آلمان شرقی بسیار حایز اهمیت است. ما فکر می کنیم نباید بچنین افرادی اجازه داد در بین مردم زندگی کند. زیرا وجود آنها ضررهای زیادی برای جامعه دارد. ضمن <تصفح> اینکه ما معتقدیم که او به تنهایی کار نمی کند و قطعا جزی از یک مجموعه است که هدف اصلیشان، از بین بردن اعتماد مردم به نظام و ایجاد ناآرامی در کشور است. طی بررسی دریافتیم که نامبرده با یک طبعه آلمان غربی ازدواج کرده است و به همین دلیل ما تقریباً مطمئن هستیم که او با دشمن در اعتباد است و فعالیت, ها، فعالیت های او بخشی از برنامه های شرورانه آنها برای به بازی گرفتن سرنوشت کشور می بنابر آنچه چه شد درخواست دستگیری او و همسر خارجیش را داریم تا با بازجوی از آنها ضمن کشف شبکهی که برای آن کار میکنند بتوانیم به اهداف پدیدشان پی ببریم و آن را خونسا کنیم. امضا نام شده تاریخ 18 دسامبر 1963 در همان تاریخ دریافت گزارش با درخواست آن مبنی بر دستگیری متهم موافقت شد. هیلموت این برگه را سره جایش برگردند و مدرک بعدی را برداشت. صورتجلسه گزارش دستگیری متهم. در روز چهارشنبه مورخ 18 دسامبر 1963 دستگیری این افراد انجام شد. یک سپ برگن، دو هیلدا اشمید. این کار رأس ساعت ده شب و بنابرای موافقت قبلی رئیس سازمان انجام پذیرفت. هر از متهمین در اتاقهای جداگانه در پایگاه بازداشت هستند. پی نوشت فرزند خورسال متهمین به اداره امور خانواده تحویل داده شد تا به یک مرکز نگهداری کودکان واگذار شود مدرک که بعدی توجه وکیل را جلب کرد خلاصه بازجویی از متهم نام متهم سپ برگن تاریخ 28 ژانویه 1964 تی یک ماه گذشته بازجویی از متهم ادامه یافت و در این مدت از انواع ابزار بازجویی سنتی استفاده شد. نامبرده تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره گروهی که آنها را اداره می کند و افرادی که در رأس آنها هستند و یا هم دست ارائه نداده است. متهم همچنان اصرار دارد ارتکاب هر گونه جرم از موارد اتهام را انکار کند و از همکاری با بازجوها نیز خودداری می‌نماید. چند مورد فرصت بخشش و در مقابل نامبردن از همدستانش به او داده شد اما هنوز اعتراف نکرده و نام گروه خود را نیز لو نداده است بنابر آنچه ذکر شد بازجوها به بخش پزشکی سازمان متوسل شدند که ضمن اعلام همکاری تصمیم بر شد که نهایتا فردا یا پس فردا داروهای لازم جهت تسهیل اعترافگیری از متهمان را در اختیار ما قرار دهد. ده سپس مدرک مشابه دیگری را برداشت و مطالعه نمود. خلاصه بازجویی از متهم. نام متهم هیلدا اشمیت. تاریخ 28 ژانویه 1964. متهم از زمان بازداشت به زندانی مشترک با یکی از جاسوسان ما فرستاده شد. جاسوس ما توانسته اعتماد نامبرده را جلب کند و آنها با هم دوست شدند. هیلدا تاکنون هیچ اعترافی نکرده است. سخنان وی بیشتر بر ترس او در مورد سرنوشت دختر و همسرش متمرکز است. دوست زندانیش خیلی تلاش کرد او را به اعتراف جهت خلاص شدن از آن موقعیت تشویق کند، به این امید که دخترش را به او بازگردانند. اما نامبرده همچنان اصرار به انکار دارد و اتهامات وارد شده علیه خود را رد کند. این روند در جریان های امروز نیز تکرار شد. سوالاتی از او شد که محور تمام پاسخهایش، حول تلاش برای دانستن سرنوشت دخترش و دفاع از همسرش میچرخید. او ادعا می‌کند که همسرش بیگناه است و خودش نیز از هیچ فعالیتی علیه نظام اطلاع ندارد. بنابر موارد ذکر شده و با توجه به اینکه هیل شمید شهروند آلمان غربی است، توصیه می‌شود با دولت مطبوعه وی تماس گرفته شود. و مذاکره با آنها در جهت آزادی وی آغاز گردد. چشمان هیلمود با مطالعه برگ که پشت گزارش بازجویی از هیلدا قرار داشت گرد شد. گزارش از طرف اداره امور خانواده. به اطلاع میرساند امروز همسر نام محف شده. عضو دفتر مرکزی حزب ضمن بازدید از مرکز نگهداری کودکان، فرزند متهم سپ برگن را انتخاب و به فرزند خواندگی قبول کرده است. بدین ترتیب این کودک به این خانواده کوچک سپرده می شود و آنها نسبت به نگهداری و تربیت وی احتمام خواهند ورزید. تاریخ 29 ژانویه 1964. خلاصی تحقیق از متهم نام متهم سپ برگن، تاریخ 30 ژانویه 1964 متهم، رس ساعت ده صبح از زندان احزار شد. تمام طول شب گذشته، اتاقی که نامبرده در آن زندانی بود، با شدیدترین درجه نور روشن بود. متهم در حالتی کاملا ناتوان حاضر شد و بعد از معاینه پزشک و مشورت با بازجوها همگی اتفاق نظر داشتند که خوراندن داروی اعتراف به متهم که بخش پزشکی ارسال کرده بود، مانعی ندارد. بعد از تزریق دارو، متهم دچار تشنجی شبیه به بیماری سر شد و بعد از آن به اغما رفت پزشک بعد از معاینه وی اعلام کرد نامبرده به کما رفته است همچنین میزان هوشیاری مغز کاهش یافته و ضربان قلب نیز رو به کاهش است نامبرده بلافاصله به کلینیک سازمان منتقل شد حدود یک ساعت بعد پزشک خبر فوت متهم را به ما اطلاع داد بنابراین گواهی فوت به پیوست صادر شد و در آن استقلبی علت فوتزه کردید که به دلیل بیماری متهم قبل از دستگیری وی رخ داده است. متهم در قبرستان افراد مجهول الهویه در برلین دفن شد. آخرین برگه موجود در پرونده یک گزارش درباره هیلدا بود. خلاصه مذاکرات با دولت آلمان غربی در خصوص متهم. در مورد زندانی هیلدا اشمید که دارای هویت آلمان غربی می باشد، سه نوبت مذاکره انجام کردید است. نتایج از این مذاکرات به طور خلاصه در زیر میآید. آید: یک، پیشنهاد اول پرداخت مبلغ ده هزار مارک به پول آلمان غربی بود که بلافاصله رد شد. دو، طی مذاکرات بعدی مبلغ پیشنهادی به 25 هزار مارک افزایش یافت. 3. مذاکرات ما شامل همسر و دختر نام برده نمی شود و با استناد به اینکه آنها شهروند آلمان شرقی هستند هیچ گونه نامی از آنها برده نشده و لطفی به آنها نخواهد شد. بدین ترتیب آنها موضوع این گفتگوها و مذاکرات نیستند. بنابر آنچه ذکر شد و برای نشان دادن نیت دولت ما با آزادی متهم هیلدا داشمید بعد از پرداخت مبلغ مورد توافق موافقت می شود. این آزادی بدون رفع اتهامات انجام می‌پذیرد. همچنین متهم تضمین می دهد که هیچ تلاشی برای ورود مجدد به آلمان شرقی نکند. همچنین باید از همکنون و در آینده به این موضوع پایبند باشد که موضوع همسر و دختر متهم جزء مسائل داخلی دولت آلمان شرقی است و هر گونه تلاش و توجه به این موضوع دخالت در مسائل داخلی دولت و شهروندان آلمان شرقی تلقی می‌گردد. پی نوشت: بلافاصله بعد از تایید موارد ذکر شده و پس از پرداخت مبلغ مورد توافق، نامبرده برده هیلدا اشمیت در ابتدای هفته آینده به دولت مطبوع خود تحویل داده می‌شود. نوشته شده در 10 فوریه 1964